وقتی اصل از مهد کودک در آمده بود، پسرک خوشگل خوشعدا افتاده بود دنبالش. اصل حس کرده بود و هیچ اکس عملی نشان نداده بود. اصل تا نزدیک خانه تقریبا روبروی تلفن عمومی چند قدم مانده به میوه فروشی ساکت آمده بود. سربزیر و آرام اینجا برگشته بود طرف پسرک خوشگل و به او لبخند زده بود. برادرم هم خوشصورت است، اما اینطور وقیه نیست پسرک یک قدم جلو گذاشته بود اصل هم آن وقت از آنچه که سالها پیش از این در حزب به او آموخته بودند به نام دفاع شخصی سود جسته بود بد هم با تمام قدرتش زده بود به گردن پسرک خوشگل پسرک زمین خورده بود سه تا از جوانهای بیکاره محل که جلوی میوه فروشی ایستاده بودند، بی آنکه نزدیک شوند، نگاه کرده بودند. پسرک بلند شده بود و خیز برداشته بود برای گریختن. اما اصل از یک فرصت بی زمان استفاده کرده بود و با نوک کفش به شکل واقعاً تحقیرآمیز او را بدرقه کرده بود. پسرک بار دیگر تعادلش را از دست داده بود و کله کرده بود. با صورت و دستها فرود آمده بود، باز برخواسته بود و دویده بود و جوانهای بیکاره محل بیان آنکه نزدیک شوند کف زده بودند. اصل آسود لبخند زده بود و سر تکان داده بود به عنوان تشکر و با لبخند از کنار ایشان رد شده بود. بعد مانده بود که به گیل مرد بگوید یا نگوید که می دانست نگفتن همان دروغ گفتن است. قدری کسیفتر شب شادمانه داستان را گفت گیل مرد از پی سکوتی طولانی زیر لب زمزمه کرد از من بر آید این طور کارها از من بر آید. کوچکم برای در افتادن اصل گفت برای همین هم نمی خواستم بگویم من شوهر کردم محافظ نگرفتم هر زنی باید بتواند خودش از خودش محافظت کند. اگر کشتگیر بودی هم نمیگذاشتم دست روی مردم بلند کنی. باز در خانه ایم. همه چیز حاضر است. میز چیده است. همه چیز برق می زند. از غبار بیزارم. از خاک آلودگی از اینکه کنجهایی دود گرفته وجود داشته باشد که دستها را سیاه کند. همین هاست که زندگی را از شکل میاندازد و بد رنگ می کند. عجب بوی خوشی در خانه پیچیده است. بوی ترشی سیر است. یک کاسه سر سفره گذاشتم. نه مادر، بیشتر از بوی سیر است. پس بوی غذاهایی است که پختم. باز هم بیشتر. پس خیالاتی شده ای پسرم. در این خانه خدا را شکر که همیشه بوی اتر محبت می آید. وقتی شما آنطور با خلوص و صفا به نماز میستی، ات باز هم بیشتر می شود. تو هم خیالاتی شده ای عروس خوب من. خدا باید قبول کند، نه بنده خدا. آن هم بنده هایی مثل شما که انگار کافر به دنیا آمده اید. مادر، احتیاط کنید. اینطور بی هوا فریاد نزنید. همسایه ها حرف زیادی نزن. همسایهاتان آدمند نه نخبر تو میخندی، دختر میخندد، پسر میخندد، مادر خودش هم ریسه میرود خانه مملو از خنده میشود، زنگ میزنند بانوی کتابدار دوست قدیمی خانواده ماست حتی بچه های ما که با دوستان قدیمی ما تفاهمی ندارند، بانوی کتابدار را میخواهند زنگ میزنند این دیگر کیست؟ حبیب خدا؟ مددی؟ تو خبرش کردی؟ نه خودش بو کشیده خوب میگذرت پرو شیرین خنده خنده بانوی کتابدار از خنده ها به خنده میافتد. در باب همه چیز حرف میزنیم مددی قدری از اوضاع است. نه از نگرانی از ترسان که مبادا انقلاب به مخاطره بیفتد. مددی می ترسد. من و تو دلداریش می دهیم. بانوی کتابدار به او نگاه می کند. پسرم به بانوی کتابدار و لبخند می زند. تو می بینی. او حس می کند و برافروخته می شود. در باب همه چیز حرف می زنیم. اما آنها بیشتر بحث زمان و حرکت را دوست دارند. روزمرگی های دلنشین. نشین اصل بعد از سالیان سال این گیل مرد بدپیله هنوز مرا قانع نکرده که زمان وجود ندارد قدرت انتقال مقصودش را ندارد یا قدرت اثبات نظرش را بله و به همین دلیل من هنوز در زمان زندگی می و با زمان و همیشه فکر می کنم کاش که جنس زمان شیشه و شفاف بود آن وقت می توانستیم از این سوی زمان آن سوی زمان را ببینیم و می از پشت امروز فردا را و از پشت فردا هزار سال دیگر را البته قدری مات ای کاش که زمان شفاف بود و شیشه ای گیل مرد گفت باز مه مصنوعی او در حال حرکت است اصل گفت من حتی از خدا میخواهم که زمان را قدری نرم کند و خمیری شکل مثل سقز مثل موم من اگر فقط یک بار می تکه هایی از زمان های مختلف را بردارم و با هم مخلوط کنم ای خدا چه زمانی درست میشد گیل مرد گفت محبوب خل محبوب خطرناکی است اعتبار ندارد اصل گفت خل باید بود مثل زمان اما نه جدی و ابوس مثل زمان حس میکنید؟ زمان یک دیوار سنگی تنومند است که معماران چینی آن را می سازند. معمارانی که لبخند نمیزنند و از عشق چیز چندانی نمیدانند معماران ابوس باز هم اما کارشان و چهرههایشان و جدیتشان ما را گاهی به خنده میاندازد و وقتی به هم دیگر نشانشان میدهیم و سخت میخندیم چون از دیواری که می سازند و قیافه های جدیشان نمیترسیم آنها ناگزیرند سر بلند کنند و لبخند بزنند گیل مرد کوچک اندام شکستنی زمان را باور کنم و معماران زمان را بخندان معماران زمان را بخندان تا دیگر این گونه جدی و عبوس نباشند تا لحظه ای از ساختن بمانند عرقهای پیشانی را خوش کنند تا تو بتوانی توقف زمان یا نبودش را اثبات کنی اصل همچنان که می سخن می‌گوید، پشت به ما با نیم رخی که گهگاه سرخ می شود مددی می‌گوید. تفلک بچه هایی که در چنین ای زندگی می کنند با این مادر و این پدر. مادر می گوید خیلی دلت بخواهد. دخترم می گوید، هر دوتاشان شاعرند و نقاش. شاعران بی شعر، نقاشان بینقاشی. پدرت یک صندوق شعر دارد بی انصاف. کاملا شعر که نه قدری شعر. پس کار من هم قدری نقاشی است. گیل مرد: امروز صبح گفتی که بعد از بیرون آمدن از اثرگاه در تاریخ حرف میزنی. یادت رفت. تو از یک سو تاریخ را هم مانند زمان انکار می کنی. از سوی دیگر در یک نمایشگاه آثار تاریخی چنان غرق میشوی که تکه سنگی در دریا. حال انکارت را موجه کن یا غرقت را. مرد گفت: اگر اینطور بگویی راه به جایی نمیبریم من تاریخ را انکار نمی نمیکنم انسان معتقد به تاریخ را مردود میشناسم انسان تاریخگرا انسانی است تهی شده از عشق همانطور که انسان متکی به زمان و متکی به خاطر انسانی است از کف رفته و در هم انسان معتقد به اصالت تاریخ نیز چنین است انسان تاریخ گرا یعنی یک موجود خسته موجودی که خستگی های سراسر تاریخ را به دوش می کشد مگر آنکه هر لحظه از تاریخ را به تعبیری انباشته از عشق ببیند نه مملو از اقدامات ابلهانی ستمکاران، سلاطین، سرداران و بدکاران که در این حال به دلیل زنده بودن عشق آنچه می بیند زنده و در حال است نه تاریخی انسان هیچ نیازی ندارد که پیوسته خاطرات را صدا کند ما حاصل ها و تجربه ها برای حرکت کافی است کلام علی کلام حافظ کلام مولوی کلام اعاظم بس است تا ما قدمهای بلندی به جلو برداریم جلو هم حرفی است معنی، قدمی برداریم این را روزگاری تو گفتی و ما با هم صحتش را آزمودیم زندگی کنیم با برنامه، هدف و انگیزه مقبول اما در حال، در حرکت، در عشق، بی نیاز از توسل به گذشته ها چرا؟ چون از گذشته ها دو گونه یادگار مانده است مصرف کردنی ها و بی مصرف مصرف کردنی ها گرچه از ده هزار سال پیش مانده باشند، نو، خوندار و امروزی هستند، متعلق به حال و کار در حال، بنابراین حیاتشان ربطی به تاریخی بودنشان ندارد، بیمصرف ها هم اصلا قابل بحث نیستند، گرچه ده هزار سال بعد بیایند. همان بهتر که در قبرستان مغل ها به خاک سپرده شوند، حتی اگر مغل نباشند، زندگی روزمره مؤمنانه اندیشمندانه، این تمام حرف من است. اصل بانو، این را به درستی حس کن، تا شکافی و ترکی در زندگی روزمره پیش نیاید. انسان مجبور نمی شود خاطر را فراخواند تا با خمیر خاطر آن شکاف یا ترک را موقتاً بپوشاند و تا شور زندگی اجتماعی فروکش نکند انسان مجبور نمیشود به شور به تاریخی توسل بجوید خوب و بد دو انصر اخلاقی هستند نه دو انصر تاریخی ما نیک یا بدمان ستمگری یا دادخواهیمان، فساد یا طهارتمان انسان دوستی یا نفرتمان را از تاریخ نمیگیریم از منبع باورهای اخلاقی مان می‌گیریم که نطفه‌های آنها پیش از تاریخ مدون بسته شده است لاغل همان کوزه ها کاسه ها چرخ ها و ها نشان می‌دهند که انسان قبل از تاریخ به چیزی معتقد بوده است و اعتقاد امری است اخلاقی نه تاریخی ارتباط انسان با تاریخ ارتباطی است غیر واقعی، غیر حقیقی، غیر حسی و ریاکارانه. اما ارتباط انسان با معنویت، با هنر، با حرکت و نان ارتباطی است پویا، مستقیم و کارآمد. اصل هرگز به زمان و تاریخ فکر نکن. تنها شکست خوردگان به این دو انصر باطل می و به شبیه خون ظالمانه زمان ما زمان را زمین زدیم و خنجر ایمان و اعتقاد را به ضرب در قلب سنگیش فرو کردیم ما فقط حرکتیم اصل فقط بس شور بس الان درد قلبت شروع می شود هر میپذیریم. فقط به خاطر آن که بیش از این نجوشی و قوقا کنی